در طی دیویز سال گذشته یکی از موضوعات مورد بحث عموم بوده. آیا آفرینش باور کردنیه؟ امروز نگاهی عمیق با آفرینش خواهیم انداخت و اینکه علم راجع به آفرینش چی میگه و معتقدان بافرینش آفرینش راجع به علم چی میگن؟ و در کدام نقطه؟ آیا اصلا اتفاق نظر دارن؟ ما در درس امروز به این سوالات پاسخ خواهیم گفت بیایید با هم شروع کنیم سلام درس امروز رو با بررسی کتاب پیدایش شروع میکنیم. با توجه به اینکه خدا در کتاب پیدایش راجع به خلقت یا آفرینش به ما چی گفته به دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش آمدید ما اکنون بررسی کلی کتاب مقدس را از پیدایش تا مکاشفه شروع کنیم. و خوشحالیم که شما تصمیم گرفتید بخشی از این کلاس مهم باشید چون ما مهمترین کتاب دنیا رو فرا می گیریم. کلمه جنسیس یا پیدایش اسم اولین کتاب کتاب مقدس با کلمه ژنتیک مشابهت داره. اون مربوط به آغاز هاست. همونطور که در جلسه قبل این کتاب رو ملاحظه کردیم گفتیم که این کتاب نوشته شده که چیزها رو اونطور که بود بگه. خدا مجبور نیست به ما توضیح بده. این کتاب چیزها رو اونطور که بود به ما میگه چون خدا میخواد اونطور که هست اونا رو بفهمیم این حقیقتی از تمام موضوعاتیه که ما در کتاب پیدایش بررسی میکنیم و همینطور حقیقتی که خدا از آفرینش به ما میگه. در اولین باب از کتاب پیدایش ما این کلمات رو داریم. در ابتدا خدا آسمان و زمین رو آفرید. زمین توهی و بایر بود و تاریکی بر روی لجه و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت. بعد خدا گفت آبها به انبوه جانوران بر شود و پرندگان بالای زمین بر روی فلک آسمان پرواز کنند. پس خدا نهنگان بزرگ را آفرید و همه جانداران خزنده را که آبها از آنها موافق اجناس آنها پر شد و همه پرندگان بالدار را به با اجناس آنها و خدا دید که نیکوست. و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین میخزن حکومت نماید. پس خدا آدم را به شباهت خدا آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید و خدا ایشان را برکت داد و به ایشان گفت بارور و کسیر شوید و زمین را پر سازید و خدا هر چه ساخته بود دید و همانا بسیار نیکو بود این سؤال از خلقت چیزی که گفتیم سؤال عمومی در مورد آفرینش است. اگه یه بحث مذهبی در یک دانشگاه را رهبری کنید فکر می کنید که کتاب مقدس از هیچ موضوع دیگه ای جز آفرینش صحبت نمی کنه. آفرینش بیشترین چیزیه که دانشجویان میخوان بحث کنن. دو کرانه در موضوع آفرینش کتاب مقدسی هست. اولا موضع دانشمندان هست که میگن گزارش خلقت در کتاب پیدایش منشه علمی معتبر نداره و بنابراین اونو به عنوان کلام وحی خدا رد می موضع دیگه که مخالف اون موضع هست موزه ایمانداران محافظ کار هست که با این سوال به مسئله خلقت می پردازن. آیا علم اعتبار کتاب مقدسی داره؟ اونا می کتاب مقدس آزمودنی نیست. علم باید آزموده بشه. سؤال این نیست که آیا کتاب مقدس علمیه؟ بلکه سوال اینه که آیا علم کتاب مقدسی هست؟ سوال درست می این باشه. آیا کتاب مقدس و علم با هم سازگارند؟ وقتی کتاب مقدس بر مسئله ای مثل خلقت می پردازه، سوال درست می تونه این باشه. آیا کتاب مقدس و علم با هم سازگارن؟ اون موضوع واقعی اینجاست. اون موضوعی عام پسند و رایجه. قبل از هر چیز اگه در مورد علم فکر کنید و اینکه دانشمند چیه، لازم چیزهایی رو مد نظر قرار بدیم. اگه به مقررات دانشمندان که خودشان تعریف می کنند فکر کنید، به نتایجی می رسید. ناگزیر از پرسیدن این سوال میشید که آیا واقعا برای یک دانشمند ممکن هست که به خدا ایمان داشته باشه و یک دانشمند باشه؟ براساس روشی که خود دانشمندان از پارامترهای انزباطی علم دفاع میکنند، با یه مشکل اساسی مواجهیم. یقیناً یه دانشمند میتونه خداپرست باشه. بسیاری از دانشمندان خداپرستان پرستان سرس اما اما براساس تعریف اونها از مقررات علم انگاره ای هست که طبق اون وقتی دانشمندی خداپرست هست، در این مورد علمی فکر نمی کنه یا به عنوان یه دانشمند خداپرستانه عمل نمی کنه. دانشمندان با داده ها و پدیده هایی که مشاهده می سر و کار دارن. اونا با داده هایی کار دارن که می تونه رویت بشه بر اساس مشاهداتشون از این داده های مرئی به طرح آزمایشات می پردازن. بعد به نتیجه می رسن و اونو کاربردی میکنن این معنی دانشمند بودن و ایفای وظایف دانشمندی. باز یه نظری هست که طبق اون یه دانشمند وقتی اظهار ایمان میکنه، علمی فکر نمیکنه. کتاب مقدس در ابرانیان 11:6 میگه اما بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خوشنود ساخت. زیرا هر که به او نزدیک میشود، باید ایمان داشته باشد که او هست. اون آیه نمیگه تا زمانی که دانشمند هستی نمیتونی خدا را خوشنود کنی و نمیتونی به خدا نزدیک بشی. خدا نقشه نجات مخصوص برای دانشمندان نداره دانشمندان هم مثل هر کس دیگه‌ای باید به خدا نزدیک بشن با ایمان و ایمانی که ما را به خدا نزدیک می‌کنه و به ما امکان میده طوری زندگی کنیم که خدا رو خوشنود سازیم عطیه ای از طرف خدا هست باز بر اساس روشی بعضی دانشمندان پارامترهایی رو شرح میدن که در اون اصول علمی حرف اول رو می‌زنند وقتی دانشمندی اتیئی ایمان رو دریافت می‌کنه مثل هرکس دیگه ای وقتی او به ماوراءالطبیعه ایمان داره، وقتی به شناخت خدا نائل میشه و طوری زندگی میکنه که خدا رو خوشنود کنه، وقتی این کارها رو میکنه، راستش رو بگیم، او دانشمند نیست. ببینید، خدا یک روحه و اونایی که او رو میپرستن و به شناخت او نائل میشن، در بود روحانی زندگی به شناخت او نائل میشن و او رو میپرستن، نه با علمی. حث میزنم همه اینا رو گفتم که اینو برسونم. وقتی ما به موضوع خلقت با عمل مستقیم خدا میرسیم وقتی به موضوع خدا میرسیم وقتی به مساله ماوراءالطبیعه می میرسیم و مکاشفه و معجزات ما در محدوده علم نیستیم خود دانشمندان هم اینو بهتون میگن بعد از همه این حرفها میخوام یه سری خطوط موازی رسم کنم فکر میکنم کنم همسانی های خیلی مهیجی وجود داره بین اونچه کتاب پیدایش از خلقت درباره منشه هر چیزی میگه و اون چه اعتقادات دانشمندان درباره منشأ انواع هست براساس اساس مقدمه ای که از کتاب مقدس دادیم وقتی به مسئله خلقت میرسید و انتظار میره که وقتی به تمام بابهای کتاب مقدس میرسید باید با این سوال شروع کنید که اون چی میگه معنی اون چیه و اون برای من چه معنایی داره همین که به سوال اول جواب بدید اون راجب خلقت چی میگه یکی از کلماتی که باید روش بررسی کنید و از نزدیک بهش نگاه کنید کلمه ای که آفرینش یا آفریده ترجمه شده این از کلمه عبری بارا ترجمه شده و این کلمه بارا یا کلمه آفرینش یا خلقت فقط سه بار در مسئله آفرینش به کار رفته در ابتدا خدا خلق میکنه و بعد در آب حیات خلق میکنه و بعد آدم رو خلق میکنه. در ابتدا عملی از بارا یا آفرینش هست یا آفرینش همه چیزها و در نتیجه اون عمل آفرینش اول شما آسمان ها رو دارید به معنی کائنات و زمین این زمین قدرت داره تمام حیات نباتات رو تولید کنه همه اینها در نتیجه اون عمل آفرینش اول به وجود میان یا بارا دومین عمل آفرینش در آب واقع میشه و اونو در آیه 21 باب 1 پیدایش میبینیم نتیجه این عمل دوم آفرینش حیات جانوران هست بعد عمل سوم آفرینش هست تا اینکه امروز مردم رو داشته باشیم اما با هم نظری به این بندازیم در خلال این سعمل بارای آفرینش مبحث آفرینش در پیدایش کلماتی رو به کار میبره که واقعا میتونه به عنوان ایجاد و تغییر معنی بشه ما میخونیم در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید وقتی او آسمانها و زمین را آفرید اونها شکل بودند توهی و بایر بودن. با آب همراه بودن. تاریک و عمیق در آیه دوم مبحث آفرینش در پیدایش باب یک میخونیم که روح خدا شروع به حرکت بر روی این مخلوق می کنه. حالا در فاصله آیه یک و دو از باب یک پیدایش افراد زیادی نظریه ای ارائه دن اون به نظریه بلا معروفه اونا میگن بعد از آیه یک اتفاق افتاد که کل خلقت اول رو زائل کرد پس خدا مجبور شد مخلوق دیگه ای خلق بکنه اونا فکر میکنن که خدا نمیتونست چیزی خلق کنه که بیشکل و تاریک و عمیق و همراه با آب و توهی باشه باید خودتون خودتونو به عنوان یک دانشجوی کتاب مقدس عادت بدید سوال کنید. اون چی میگه؟ رو کراس بگیم. اون نمیگه بلایی یارس شد. اون نمیگه اتفاقی برای این مخلوق افتاد و اون بیشکل و توهی شد. اون میگه بیشکل و توهی بود. الهیدانان میگن یک آشفتگی بود. و اون میگه این در واقع چیزیه که میگه روح خدا بر روی این مخلوق قرار گرفت و اونو داد، و شکل داد و عوض کرد. در پیدایش یک بین آیه یک و بیست 21 و شما کلماتی مثل جدا ساخت یک جا جمع کرد و ظاهر کرد میبینید. برای مثال میگه خشکی ظاهر کردی. خشکی در زمانی که ظاهر شد خلق نگردید. اون در ابتدا آفریده شده بود و ظاهرا زیر آب بود. در مرحله خاصی وقتی خدا آبها را از یکدیگر جدا کرد خشکی ظاهر کردی. جالبه که دانشمندان مثل، زیست و فسیلشناسان همه متفق القول معتقدند که تمام زمین روزی زیر آب بوده. جالبه که علم در اینجا با کتاب پیدایش در یک راستا هستند. کلمه بارا یا خلق کردن یعنی ساختن چیزی از هیچ چیز. مطلقاً چیزی نبود. بعد خدا این عمل بارا را انجام داد و حالا چیزهایی دارید. دیگر کلمات به معنی چیزی مثل اینه، عوض کردن شکل چیزی که قبلا وجود داشته. مثلا شما درختی رو می گیرید و اونو قطع اونو می کنید اونو میبرید الوار می سازید بعد اونو رنده می زنید و صاف می و در نهایت یه میز یا صندلی می سازید. این آفرینش نیست این ساختن چیزیه ساختن چیزی یعنی شما شکل چیزی رو که از قبل وجود داشت عوض کردید این کلمات در پیدایش بعد از آیه یک و تا آیه آ 21 کلماتی هستند به این معنی عوض کردن شکل چیزی که قبلا وجود داره طبق کلمه عبری بارا اون خلقت نیست عمل اول آفرینش گرچه کاهنات رو به وجود آورد زمین حیات گیاهی و حیات جانوری به وجود نیاورد پس باید عمل دیگی از بارا در آب انجام میشد. دوباره دانشمندان ظاهرا با اطمینان میگویند که حیات جانوران در آب شروع شده و این همون چیزیه که کتاب پیدایش میگه باید عمل سوم بارا هم انجام می‌شد چون حیات جانوری تبدیل به حیات انسانی نشده. باید عمل سوم خلقت با استانداردی جدا انجام می شده و از این رو وقتی به آیه 26 میرسیم و 27 به ما میگه خدا برای سومین بار خلق کرد. حاصل این خلقت سوم انسان بود. وقتی قسمت آفرینش رو در کتاب پیدایش می‌خونید به طور جدی آیه به آیه بخونید. و بعد فرضیه تکامل منکران خدا رو بررسی کنید. خواهید فهمید که بخش آفرینش کتاب پیدایش به سه حلقه مفقوده فرضیه تکامل اشاره میکنه. سه بار کتاب پیدایش میگه خدا آفرید. در اون سه نقطه که پیدایش به ما میگه خدا آفرید، منکران خدا در حال تقلا برای یافتن پاسخ به سه حلقه مفقوده هستند. اینو ملاحظه کنید. حساب آفرینش کتاب پیدایش هر چیزی که اینجا هست حسابش رو داره. همه چیز حاصل سه عمل آفرینش از جانب خداست. تغییر و توصیح های زیادی در بین اون سه عمل آفرینش وجود داره. بعد از این سه عمل اصلی آفرینش روح خدا به فرم دادن تغییر و توسعه این مخلوق ادامه میده. یک همخانی بین این حساب آفرینش و نظریه مورد قبول خیلی از دانشمندان هست. دانشمندان اشکال حیات رو که الان هست مطالعه می کنند و می بینند که اوض میشن و توسعه پیدا میکنن میگن باید این باشه حیات توسعه پیدا میکنه رشد میکنه و تغییر میکنه بعضی مسیحیان با وحشت نظر اونا رو رد میکنند و میگن این اصلا نمیشه خب وقتی به قسمت آفرینش در کتاب پیدایش میرسید اون چی میگه اون واقعا چی میگه پیدایش میگه سه عمل آفرینش بوده اما در بین اعمال آفرینش تغییر و توسعه بوده پس تئوری تکامل و کتاب پیدایش دیدگاه مشترکی در زمینه تغییر و توسعه دارد این جاییه که دانشمندان با ایمانداران توافق ندارن. سه بار در موضوع پیدایش کتاب مقدس میگه خدا و میگه بارا خدا آفری. بسیاری از دانشمندان در اون زمینه با کتاب مقدس توافق نسبی دارند. گاهی چون اون خارج از حیطه اونهاست، اونا به اون داده ها کاری ندارن. خلقت با ماوره و طبیعه هم اقلانی و هم روحانی عجین هست. به قول بعضی از دانشمندان، شما نمیتونید با داده های ماورا برخورد علمی بکنید. به طور خلاصه فکر میکنم خیلی جالبه خطوط موازی در علم و مبحث آفرینش در کتاب پیدایش رو بررسی کنید. جا هست که دانشمندان منکر خدا در جواب دادن به سوالات مشکل دارند و فقط نظریه ارائه میدن. اینها سه جایی هستند که کتاب پیدایش میگه خدا آفری دانشمندان منکر خدا در جواب به این سوال مشکل دارند همه اینا چطور شروع شد وقتی در ابتدا شروع میکنید اونا خیلی سخت گرفتار یافتن یه جواب هستند یادم یه بار در یه سمینار حضور داشتم که دانشمند معروفی در دانشگاهی معتبر سخنرانی میکرد وقتی به این نقطه رسید گفت در ابتدا گازهایی بودند که به دور خود میچرخیدند من دست خودم رو بالا بردم او از پشت عینک زخیمش به من نگاه کرد و گفت از من نپرس گازها از کجا آمدند این همون سوالی بود که من میخواستم بپرسم. ببینید اونا سخت در تلاش که به اولین پدیده جوابی پیدا کنند. اون از کجا شروع شد؟ این جاییه که کتاب مقدس میگه خدا آفرید. به خاطر روشی که دانشمندان ضوابط علم رو شعر میدن دانشمندان اغلب میگن من نمیتونم باور کنم که خدا آفرید. دانشمندان به تئوری بیگ بنگ اعتقاد دارند و میگن یه انفجار عظیم بود و همه چی از اون پدید آمد. شخصاً برای من مشکل که این تئوری انفجار عظیم یا بیگ بنگ رو درک کنم. کتاب مقدس میگه خدای عظیمی بود و این خدای عظیم آفرید و همه چیز این گونه شروع شد. یک خدای عظیم خیلی معتبرتر و قابل قبولتر از یه انفجار عظیمه. دانشمندان در یافتن جواب این سوال خیلی مشکل دارن. همه اینها چطور پدید آمد؟ دومین جایی که دانشمندان سکولار برای یافتن جواب سخت در تلاشند این سوال هست که زندگی گیاهی چگونه آغاز شد؟ و بعد در دوره تکاملی خود به حیات جانوری تبدیل شد. فقط یه حلقه مفقوده نیست. سه حلقه بزرگ مفقوده هست و این دومیه. چطور حیات گیاهی به حیات جانوری تبدیل شد؟ اینجا دوباره کتاب مقدس میگه خدا، عملی از خدا بود، عملی از آفرینش بود. بعد البته حلقه مفقوده ای که همه ما فکر میکنیم چطور حیات جانوری تبدیل به حیات انسانی شد اینجا برای سومین بار مبحث آفرینش کتاب پیدایش میگه خدا کتاب پیدایش به ما میگه خدا انسان را آفرید حالا من شما رو نمیدونم اما برای من خیلی جالبه که مشاهده میکنم در سه نقطه که دانشمندان سکولار سخت در تلاش برای یافتن جواب هستند کتاب پیدایش به ما جواب میده برای من جذابه که تئوریهای پیشینیان رو در مورد منشأ ملاحظه میکنم، فقط با برگشتن به حدود 400 سال پیش به زمان کریستوف کلوم عقیده اونا به منشا چی بود؟ اونا عقیده داشتند که زمین بر روی خورتوم فیلی میچرخه که روی چهار لاک پشت دیستاده. اونا واقعا این عقیده خودروی بدوی رو راجب آغاز آفرینش داشتند. این فقط حدود 500 سال پیش بود. کتاب مقدس حدود 3300 سال پیش از داروین نوشته شده بله این جالب نیست 3300 سال پیش از داروین نویسنده ی کتاب پیدایش باب یک گفته حیات تغییر میکنه و گسترش پیدا میکنه در کتاب مقدس ما جواب سوالاتی رو می بینیم که مشکل شدن چون کتاب مقدس سه بار گفته خدا آفری خدا به آفرینشی اشاره میکنه کنه که هر چیزی رو که اینجاست تولید نمود کتاب مقدس سعی نمی‌کنه علمی باشه. منظور کتاب مقدس نیست که به ما پیامی در مورد آفرینش یا منشه اموا بده. ما وقتی به منظور کتاب مقدس در مقدمه اشاره می کنیم اونو ندیده می‌گیریم. کتاب مقدس کتاب آموزش علمی نیست. کتاب مقدس کتاب آموزش نجات هست. کتاب مقدس کتاب آموزش رستگاریه. کتاب مقدس میخواد به ما زمینه تاریخی رو بده که در اون زمینه نجات و رسگاری آمد منظور کتاب مقدس اینه دوباره میگم 1189 باب در کتاب مقدس وجود داره فقط یک باب از اون باب ها از آفرینش حرف میزنن کتاب مقدس حدود 3300 ساله که بر علم غلبه میکنه اگرچه کتاب مقدس در مورد آفرینش خیلی خلاصه صحبت میکنه سالها قبل از اینکه علم شروع به تفکر در مورد گسترش و تغییر حیات بکنه، کتاب مقدس گفته حیات تغییر کرد و گسترش یافت در حالی که به بررسی این سؤال آفرینش ادامه میدیم دیم، لازمه که این سؤال رو بپرسیم. کی شایسته هست که در مورد موضوع آفرینش حرف بزنه؟ خدا مردی خیلی بزرگ را در دوران باستان به نام ایوب حقیر شمرد. ایوب مرد بسیار باهوشی بود و او از چیزهایی مثل آفرینش بحث می کرد. خدا واقعا او را با پرسیدن یک سوال ساده خار کرد. او پرسید تو کجا بودی وقتی من آسمان ها و زمین رو خلق کردم؟ در این مورد چیزی به من بگو ایو؟ اون سوال خیلی خوبی هست. ببینید هیچ دانشمندی اونجا نظارگر نبود که آزمایش بکنه و به نتیجه برسه. خدا آسمان ها و زمین رو آفرید. بنابراین برای دانشمندان غیر ممکنه که بتونن واقعا با اقتدار در مورد آفرینش و شید انوا صحبت بکنم صحبت کردن از آفرینش ضوابط علمی نیست این سوال متعلق به قلمرو الهیات و احتمالا فلسفه است من نمی دونم تا حالا فلسفه خوندید یا نه؟ من یه دوره فلسفه خوندم تمام یک سال فلسفه به این گفته استاد ختم شد حالا در طی کلاس امسال ما به چهار نتیجه رسیدیم و اونا را رو روی تخته سیاه نوشت اولیش اینه من نمیدونم و اونو یادداشت کردم ما فکر میکردیم این یک سال فرصت خوبی بود که به او گوش میکردیم. فکر کردیم شاید او نمیدونست. بعد نتیجه دوم او که بر روی تخته نوشتیم بود. شما نمیدونید. و البته اگه او با اون همه معلومات نمیدونست ما کی بودیم که بگیم ما میدونیم. پس دومین نتیجهش رو پذیرفتیم. سومین نتیجه او این بود. هیچ کس دیگه ای هم نمیدونه. و اون رو روی تخته نوشت. بر اساس نوشته‌های روی تخته او اون سال رو به پایان می برد و خیلی هم سخت نبود. نتیجه چهارم او این بود. هوشمندانه اینه که در موردش فکر کنید. حالا این فلسفه است. من نمی‌دونم، تو نمی‌دونی، هیچ کس نمی‌دونه، اما هوشمندانه است که بهش فکر کنید. اگه مایل باشید، می‌تونید آفرینش رو در قلم قلمرو فلسفه قرار بدید. شما می‌تونید به همون گمان برسید و به عنوان فیلسوفان بگید من در مورد آفرینش نمیدونم تو در مورد آفرینش نمیدونی هیچ کس در مورد آفرینش نمیدونه اما هوشمندان اینه که بهش فکر کنید کتاب پیدایش با گفتن این به ما شروع میکنه موضوع آفرینش متعلق به خداست خدا آفرید فقط خدا آنجا بود فقط خدا میدونه پس تنها کسی که میتونه جلو بیاد و به ما درباره منشأ حیات بگه نبی هست که از خدا مکاشفه داره و این در واقع موسا بود، موسا یک نبی بود، او در سه زمان مختلف به مدت چهل شبان روز بالای کوه سینا رفت بدون اینکه چیزی بخوره و گفت خدایا من بیش از اون که بخوام چیزی بخورم کلامی از تو میخوام و خدا به او مکاشفه داد، خدا به او کلام داد اون مکاشفات پنج کتاب اول کتاب مقدسه پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تصنیه مکاشفه با جمله ساده از آفرینش شروع میشه اون جمله مربوط به آفرینش مکاشفه ای از خدا بود اگرچه اون به این منظور نبود که آموزشی جامع از آفرینش باشه ایمان دارم که اون چه او از آفرینش میگه حقیقته و تایید خواهد شد که حقیقته وقتی به مسئله آفرینش میرسیم ما این دو موضع مخالف رو داریم و سراحتم میگم من دوست ندارم مجبور بشم اینو و یا اون یکی رو بپذیرم از طرفی ما ایماندارانه کاری داریم که میگن اگه به کتاب مقدس ایمان دارید، باید باور کنید که زمین فقط 6000 سال عمر داره و انسان حدود 6000 ساله که آفریده شده. شما به خاطر اینکه به کتاب مقدس ایمان دارید، نباید باور کنید که زمین 6000 سال عمر داره و یا همینطور انسان انسان 6000 ساله که خلق شده. چون که کتاب مقدس به ما تاریخ نمیده. یه خانم گزارشگر یه برنامه تلویزیونی یه بار از بیل گراهام پرسید: "دکتر گراهام، چطور میتونید در برابر این همه آدم بی و بگید کتاب مقدس میگه در حالی که شما مدرک انسان دارید. دکتر گرهام، چطور میتونید در برابر این همه آدم بی و بگید کتاب مقدس میگه در حالی که شما مدرک انسانشناسی دارید؟ او گفت خانم این برای من مشکل نیست. مشکل شما چیه؟ گزارشگر گفت: یه انسانشناس باید بدون زمین میلیاردها سال عمر داره و کتاب مقدس میگه فقط 6000 سال عمر داره. شما چطور میتونید باور کنید که کتاب مقدس معتبره؟ بیلی گراهام گفت از شما عذر میخوام خانم ولی کتاب مقدس در هیچ کجا نمیگه زمین یا انسان شش هزار سال عمر داره. بعد خانم گفت خب دکتر گراهام شما فکر میکنید زمین چند سال عمر داره؟ او جواب داد خانم من فکر میکنم زمین خیلی خیلی خیلی عمر داره. اون جواب خارقلاده بود. از طرفی شما موضعی رو میبینید که میگه شما باید این و یا اون قضیه رو به پذیرید. ما دی بشردوستان سکولارها منکران خدا و علم گراها میخوان یه فلسفه حیات رو جا اندازن که سکولار ماده بشر بشردوستانه بی خدا و علمی باشه برای اینکه مبنایی برای فلسفه حیاتشون ارائه بدن اونا میگن ما باید فرضیه تکامل رو اونطور که اونا تکامل رو تعریف میکنن بپذیریم من چنون هایی رو باور نمیکنم من حد وسط اون دو موزه رو باور میکنم شما موزه پیدایش رو از آفرینش دارید. برای من حیرت انگیزه که خیلی ها حتی در واقع اونو نخوندن بسیاری از دانشمندان که خیلی درباره علم میدونن هرگز حتی به مسئله آفرینش در کتاب پیدایش مراجعه نکردند و اونو بیطرفانه نخوندند. اونو جدی نگرفتن افراد خیلی خیلی زیادی هستند که به کتاب مقدس ایمان دارن و از مسئله فرضی تکامل اونقدر میترسند که حتی نگاه هم نمیکنن ببینن کتاب مقدس واقعا چی میگه من یه دانشمند نیستم و چیزی از فرضیه تکامل نمیدونم. اون مسئولیت من نیست. خاندگی من اون نیست. چیزی که من دوست دارم پیشنهاد کنم اینه چون همواره با این مسئله مواجهیم پس بیایید به موضوع آفرینش در کتاب پیدایش نگاه کنیم. از اون وحشت نکنید. فکر نکنید شما باید از خدا دفاع کنید. فقط بهش مراجعه کنید و این سوال رو بپرسید. اون واقعا چی میگه؟ انتظار داشته باشید که اونچه که میگه تحقق پیدا میکنه و مورد تایید دانشمندان قرار میگیره ما همینطور باید این سوال رو بپرسیم چرا اصلا خدا با ما از آفرینش صحبت میکنه به خاطر این نبوده که او احساس کرده موظف به ما توضیح بده خدا میدونه که روزی ما به این نتیجه میرسیم که ما خودمون به عملی از آفرینش در قلبهامون نیازمندیم. خدا میدونه این برای ما پیش خواهد اومد همونطور که برای داوود پیش اومد وقتی داوود به طرز اسفناکی گناه کرد این دعای بزرگ رو کرد. خدایا حقیقت بخش های درونیم رو به من نشون بده. وقتی خدا حقیقت بخش درونیش رو به اون نشون داد داوود گفت من گناهکارم. وقتی در بطن مادرم نقش میبستم گناهکار بودم. وقتی در رحم مادرم بودم گناهکار بودم. این مشکل منه. بعد از اینکه خدا مرد درونی او رو نشون داد داوود این دعای عظیم رو کرد. و در اون از کلمه عظیم بارا استفاده کرد خدایا دلی پاک در من بیافرین و روحی استوار در من تازه بساز چیزی که در واقع داود میگفت این بود خدایا اگه تو موجزه ای از آفرینش در قلب من ظاهر نکنی من باز هم شکست خواهم خورد دوباره و دوباره و دوباره من در مرد درونیم نیاز به خلقتی تازه دارم جواب دعای داوود خلقتی تازه بود این چیزیه که ایسا ازش صحبت میکرد وقتی گفت عجب مدار که گفتم باید از نو زاده شوید چون آن که از جسم زاده می شود جسم است شما باید از نو متولد شوید شما به عملی از آفرینش نیازمندی وقتی رسولان به آموزه ی تولد دوباره عیسی اشاره می‌کنند از آن به عنوان خلقت یاد می‌کنند اونا میگن هر کسی که از نو متولد می شود خلقتی تازه است پولس میگه ما کار دست او هستیم آفریده شده در مسیح عیسی کسانی که از نوع متولد میشوند عمل آفرینش رو تجربه میکنند و در نتیجه اون عمل اونها کار دست خدا هستند. به اعتقاد من خدا میخواد ما درک کنیم که به عمل آفرینش نیازمندیم. او تنها کسیه که اون کار رو انجام میده، فقط خدا میتونه خلق بکنه. به این دلیل از خلقت با ما حرف میزنه همونطور که بوده. چون او میخواد ما خلقت رو به همون شکل که هست درک کنیم. او میخواد ما بدونیم که کسی که از جسم متولد میشه فقط جسمه و ما محتاج یک عمل آفرینش هستیم. یا تولدی تازه، تولدی روحانی. آیا تولد تازه رو تجربه کردی؟ تجربه خلقتی تازه در زندگیتون با به که پیدایش رو بخونید و داستان آفرینش رو به دقت از نظر بگذرونید. خدا آفرید و امروز باز هم میتونه خلق کنه. او میخواد درون شما قلب تازهی خلق کنه. اگه گوش کنید و فکر کنید این خیلی جالبه. میدونید اگه امروز بمیرید شما نزد خدا نخواهید رفت چون او قلب قلب ای در شما خلق نکرده. میخوام همین الان با خدا حرف بزنید. بگید خدایا میدونم که به نیروی خلقت تو در زندگیم نیازمندم. خدای خالق آسمان ها و زمین میخوام تو رو بشناسم. میخوام درون من قلبی تازه خلق کنی کمکم کن راههای تو رو پیروی کنم آیا آفرینش باور کردنیه؟ ما یا باید به کتاب مقدسی داشته باشیم و یا به بعضی از نظریه ها. اما مهمترین خلقت خلقت قلبی تازه و زندگی تازه است که خدا میخواد در هر کدوم ما خلق کنه مچکر که همراه ما بودین و دعای ما اینه که شما خلقتی تازه در مسیح عیسی بشید و الان خدا شما رو شکل بده و شما رو نمونه زیبا و عالی از مهارت استادانش بکنه. عزیزان، ترتیبی بدین در جلسه بعد همراه ما باشید که با هم به درس پیدایش ادامه بدیم.